یا رسول الله و آله خایه بین و المعصومین الله اللهم اغفر لنا الراحمین که مرحوم شیخ در حرف مسئله پنجوم رو پنجم به حسب کل با نه از پنجم تعریف رو ایشون ذکر فرمایند جزء محرمات یک نقیشان دارند اجازه گفتین چون الان یه دو منفردیم بحث تکرار میکنین تقریبا بحث ایشان رو. لکن ایشون رو باشه بعد نیست ارجوکن ایشون معلوم میشه فرانه ذکر حروف و قواعد نکراسه ما همه اعلام جزء نکراسه بودن از چندین فصلیات میری گذشت اعلام تحقیق نکراسه رو از دایشون معلوم محقق گرفتار محققان پنج عنوان قرار دادن البته کتاب مناهل نماذله اول اقسام ارسال خشستر هم آمدن ما این حل اول اقسام ارسال تو مثلا امثال شیخ آورده قبل شیف هم اون الحرام. از ایشان ان اول العباده غیر دیونی من عباده لا یجوز حرام ان اخذ و اجزاء الواجب این پنج نوعی رو که در داده شده ام، تمام مثالها توی این کلمات محفظ نیست بعدها کمو زیاد کردن که شیخ خب نصورا خیلی زیاد کرد برای شیخ هم زیاد کردن که اینشالا بعدا خودمون حق سایی می کن اون وقت مرمو شیخ خیلی فرماتی در کتاب طباقه فرکتیت رو جز مقاصر محرمه گرفته بعدیشون فرمزن و لعلقه استثرادون استثراد و اصطلاح موضوعی در بحث در صلوه وحث وارد نشه به مناسبتی اونده رو یعنی تطریق تطریق جزا مقاسب نید جزا کس نیست. مگر این که چون حرام بوده از باقیه حرام بودن مثلا اول مراد او کس بر برنیانس به نفسه و کهیارن و وزانه این احتمال دوم واردتره یعنی واضحه که مراد در اینجا پول یه در مقابله در اصطلاح تکریفه ارز کردم که مرموم شیخ رزواندار الله علی عجیبه اینجا اشتار میکنه به مرموم علامه که شبا مثلا این رو کرده کرده ولیکن خود, خود ایشان هم ایشانا خواهد جمله از معاملات رو در اینجا اوگرده با این که اونا خفایش بیشتر از تکریفه مثلا جروع کس در نفت کام میشون کسی به اگر ها به تطریق رو دو از نباشید با کسی دو از ایشانه که مواردی که اشکال بیشتر داره او بردن این مورد علامه و از های توضیح رو داری این دیمندیت و مجموع مورا در مقاصر ظاهرن اون راه که منشه درامده حالا مهاده بگه و شراب و هبه یا به همه اجاره و جاده بود یعنی ظاهرن مرادشون از مقاصر هر راهی که انسان در مقابل اون کار طول بگیره این سوال هست آیا این پول برای شما حداری یا نه باشن تو سؤال اون وقت این آیان ما آمدن گفتن که اگر یک عملی در قانون حرام شد به قصر بگیم اگر عملی حرام شد پول گرفتر در مقابل اون حرام در هر نظر می خواهییم بکنید کنید الان مخواد تجاره باشه مخواد بیگ باشه مخواد جاهده باشه. باشه این پول گرفتن در مقابل حرام جایز نیست این سوال اینه این بستر بس می شد و واجب میاد. هر عملی که واجب شد پول گرفتن در مقابل اون جایز نیست و توضیحش ما در اول همین نوع اشاران عرض کردیم اصولا این بس دو بود داره. همیشه در مواهنس خودست رو دقت دقیق بکنیم آب هر مسئله رو فراموش نکنیم یک بود این مسئله قانونی یا اسلامی اسلام آنیونی یا بیشتر حقوقیه کار به شریعت اسلام نداریم اصلا میگیم از نظر قانونی به طور طبی در اون پادر آنکار جاپان شیم در هر دنیا هر قانون گذاری اگر آمد گفت یک عملی ممنوعه باون این روز خط ازم این سمیخیت قانونی اسم شما باشید تسانق قانونی سمیخیت قانونی این سمیخیت قانونی اختضار بکنه که احضر پول در مقابل رو ممنوع باشه و اون چون پول میسته گهی یعنی هر عملی رو که هر نظام متن، این امور از چاره با مثال میکنم بگم، از چرای کسی وقت خلیش کردی دکتر میگه من, کلشقی من پول ماشین از می‌بافم، مثلاً سر پلیس هم خلاصه، خب این بود. اما وقت خلیش یه پولی میگیره برای اینکه این ماشین رو از رد بکنه. ببینید بکن. این این این آنون. این باید لازمه این قانون این باشه که گرفتن این پود حرامه یعنی چه حرام؟ یعنی مثل شما نمیشه پس ما در اینجا یک تصویر حقوقی و قانونی داریم که این ما در حقوق در نظر داریم به کل قانونزاره دنیا که اگر مثل قانون تصویر بکنیم هر جا که شما منونیت رو تصویر کردیم باید گرفتن پود و لازمه شیده دیگه یه چی رو میشه؟ این چیجون ممنون میشه؟ شما باید این انتظام رو بگیم وقتی آمالیدی کار حرام شد باید گرفتن مبلغی به اضاقون رو هم بگیم ممنونه در که ملک نمیشه این ترنه از واسه این میدونه چه قوانی قبول ترده باشه از از اصلا از رو بگیم بحث نشده بیم از اوانه کنه هم در معاملات درست بر سهت میکنه نه درست های فسار نهی در معاملات درست در سهت اون معامله میکنه از اوچه اینجا بخش دار شبیه هم اینجا بخش توانه نهی در میشه. میتشتی نهی از عمله یه عملی مهنی شد یه عملی مهممونو شد حرام شد و رضا از کردم همیشه این مباحث رو بدونید که گاهی قابل تره در کل دنیای حقوق احساس به این های با مثلا حوضی قوم اومد نجرب مثلا چاد نفر هم نیست این درسته آم میست اینشانا تو بخش احضی عجرت برواجه مثلا مرمومه آیا شانس انسانی حالا یادم میاد این سی برد بیشید احضا بیشتر شد 6 و 7 که اصلا خود وجود مقاید با احضی عجرت داری این دسته اینیه خود وجود این یک وقت قانونی اگر یک قانون گذار آمد گفت این عمل واجبه این رویش بخش مخان که این وقت مخانی بکنید چجوری در مصحل وارد روشی اگر قانون گذار گفت مثلا واجب شما صبح برای سرباز دو کیلومه راه بره من با مثال ماها بگم سرباز اخذ اجرت بکنه خود وجود به نفس مقایر با اجرت یعنی در جهل قانونی حالا کار بون آلم ملاقات که آید و باید دوستان جهل قانونی اینه هر جا قانون آمد گفت این کار واجبه خود وجود یه کاری میکنه که با اخذ عزت کنار نمیاد این نحوه بحث هم نحوی بحث خدمت همیشه در بحث هم ما اگر این مسئله وردی بیرگاه نگاه احساس اصطور که نمیاد این ای هم که معروفشه فطر داره، نه هویت نه استفاض نداره. این یه بحث قانونیه و درستمون هست مصداق ندید، نه ولا شرط. عشان دیگه ما در قانون مطرح بکنیم. بگیم آی اپلود اینا واقعاً مجلسی که ما با قانوناغه واقع قانون می‌ذاری اگر شما تصویب کردین یک عمل، نه معامله، اون حد اولاً این مال معامله میشه نه میشه که شال. بگید قانون کار خارج، نه می‌دونن که اون بحث شبیر اگر یک عمل ما شد هر قانونی هر عمل این بیاد در مقابل اون عمل حرام پول بگیره به هر مقابل بگیره بگیم مقتضای قانونی اینه تحریم متابقه است با هرمت عرض پول در مقابله حالا مثلا اون تبدیلی که بیروز کردیم تحریم این محروم بودن انسان، این محروم بودن داره واسه هست. انسان محروم هست حتی از گرفتن پول وقتی شما گید محرومی محرومیت معناش اینه فران این یک برسی گذشت برس داده یک برسی این که بکیم در ما کار و قبانیم نداریم این در شریعت مقدسه این طوره. در اسلام یا در شیعه این طوره که هر عملی اگر حرام شد هر حرام بشه میخواست این خارجی باشه میخواست عمل بشه هر عملی که حرام شد اخذ اجرت، اخذ پول معامله یعنی این معامله حراردات و با اون عمل جایز میگذید این مرحله بهترین دلیل جلال تحبت همون روایت محروف محباسه که دیروز توضیح احوالشو دادن دیروز اکراح میکنن شرق تاریخی و شرق صدورشو تماما دیروز رو نحره اشاره از کردن و ان الله الا حرم شيئا تجين شي شامل عمل هم, هم بشه نه تحریم شی تحریم به این متشه حرم محرم علیکم میگه ان الله اذا حرم شیئا حرمه تمامو این همین بحثو گذشتم دیگه تکرار نمیکنم فعلا بنا بر که هر عملی که حرام شد پول گرفتن در مقابل بود به هر نقمی جایز نیست. به این معنا که اون پول ملک شما نمیشه در که با این قرار داشتون در نقم از ما تصابه بکنیم ارتکاب حرام هم انجام داریم پس این مقدر که شیخ فرموده اشکال کردن به علامه خیلی روشن نیست شیخ دارن که آفرمه کردن این مقاصره باید قدیه باشه نه مرادی جدی اینه به این که انسان بشه. یعنی چند کوشی بکنه، خب این برای چه چیزی شو بله واضحه این کارها تن هرگز این بازی که هر شخصی که می‌خواد، چه سرگرم کننده باشه چه پر انرژی باشه، چه این یک نوع تخصصی هم داره. انسان با این کار خودش اصلا پول بگیره یا نگهی کوچکندیا آدی باشه، دشمنی سیتار داره، می‌دونی؟ دا مگر من برایم مثلا تو این، حتی چین تواثال کامپیویتری هم در شدت سر رو هم یکی بازن افهم ایشون می میگه مثلا ازار گرم در حیقت نه سر گرمه در اضافه ماهان ازش میگه اینه پول بیشتری میگه افهم پول میگه در تطریف آیا ماله که اون پول هم نقطه افهمی اون که ما داریم، هر از تطریفه این عمره تصدیق میشه تا از ان کیت فول بله کارش قراره برخوال قرارداد باشه ال مضمون عهوبل عهوب ثبت این قرارداد مالک پول مالکیت پول ایراد به حرمت تصدیقه ایراد به حرمت اناره زیرا کار روشن شد پس ما در اینجا اون بخش دیگه در حیقت نوکش اینه چرا؟ چون نقطه اینه من حرمی کردم به شما این اصلا سر و این حالات این بود از زمان صحابه شروع شد تمام فقه اینه تمام که چند که در حصول اصلا تمام در و در گوش شده و تند در بحث قبلی تمام فقه اینه ما برای موضوعات حکم فیدا حکمشونه وقت سؤال این بود جمله از موضوعات بعضی احکامش آمده بعضی نیامده سوال احساسی در چه شما نهز کردم در معارض دیمی ما جزر اولین قلومی که پیدا شد یکی خیلی تفسیر ولی یعنی شما خیل رو از آراء صحابه هم میدین. اما قصور رو تو آراب صحابه نمیبین مبارسولا قدور زمان صحابه هی کنرنگ میبینی موارث ترسن رجالی رو اصلا در زمان صحابه و برمه هم نمیدیم این صرفتی معارفی که ما آران داریم که ایش از هست تفسیر هست و و حدیث از و از رجال از و اصول از و اقاید هست این در این معارفی که ما داریم دو تا از معارف دینیه ما خیلی زودتر از وقتی شکل گرسدن از همهش بیشتر و سریعتر خیل و برد تفسیر این رو تو کلوتر این همه رو. که بعد از سال زن توتب تفسیر آمده مثل اتاو سوژیو دیگران این نقطه شیمه های سوژیو یه یه تاو محمد تو زنیمی تابعی مرمان اتاو و این همه کرده اینها چون علم فرز جزو عوادل اولوزی در دنیا اصلا پیدا شد و در حیقت میشی گفت که از زمان اسلام هی موضوعات این موضوعات جدید پیش حالا اینجوری مثلا مثال بزن شما این یه روی ذهنتون سوال تاکید میکنه اینکه این چه مصادیق هست این رو بعد به صورتی در تو باز باشه که كل مصادیق در همینطوره حالیه مثلا گفتن هر حرام این در قران اومده قولی که در مغزت تاکید میگیرین ملت یاد سوال موضوع معین استیز یک حکمش حرمت این واضحه دو آیا تکریف جذاب داره؟ مثلا این همه گفتنی چهاره جذابی باید درم کیفه از این همه بعد مسلمان را رسیدم به اینکه همه هشتا هده هرسیدی رو صدوی زدن آیا تکریف داره؟ تکریف هرام تکریف جذاب داره؟ اگر معلوم کسی ده تا کارش که بروشی تو از معلوم کلا میذاره به همه بکنید یه ایزاله شیش مان. آیا تقریف جزا داره موضوع یکیه اون حکم شکم شریفتی که حکم وضعی باشه دو در مقابل تقریف پول گرفت مالک پول هست یا نه لذا و شما چیلی که هست بحثه این بحث پول گرفتن تو مقاسب میخونیم یه بحث حدود بحث تأذیران ممکن است اونجا دیده هر عمل محرم تأذیر داره یه که اونجا آمده اینجا شما اگر خوب فکر فرق بکن تمام خیلی اینه یا موضوعاتی که کندم حق نداشته یا موضوعاتی که برد از احکام داشته بر یه احکام ساعت کردم مثلا فروش انگور ساعت جاید فروش انگور به محصیدی جاید روش انگوز به کسی که که شراب داره این محل شراب چرا من شراب داره؟ این مسئله که روز داره روز محروف قدسان رسول الله لیکن این سوال مطرح می شد که این رو اگر باقیم حکمشیدر از کجا آنست اقت کردیم پس بنابراین اونشی که ما در داریم این چیزی که درست علمی ما در مطاطبه اینه این قسط نوع شهاران و همچین نوع اول این نوع اول شیلی ما روش کار نگردیم که نجاسات محبود نوع اول به نجاسات هم. این نوع شهاران و پنجان شیلی اثر قانونی داره یه قانونیه اون بحث قانونی که بگیم اصلا وجود جهن وجود اصلا با هفته اجرم نمیساید ولی ذهب از که مرمومه اسمانی هنشی میکنه این واضح فکر بکنیم چرا وجود یک نوع جل این اعتبار قانونی است این با عقضه اجرت نمیسازه اصلا این ذاتن نمیسازه کار داره بایدن نداریم یا مثلا هرمت ذاتن با عقضه اجرت نمیسازه این بعد ارزش داره این از این مرمومه علامه و برگه نقطه احساسی شمید باره. که رو به همینطوره به رضا ما همینست اول مقابل از این مقابل از این اگر مراد آقایان این یعنی از این محرماتی که عورده در این قسم شهارون مراد اون محرماتی که متعارف از انسان با ما میکنه از اجنب میکنه خب که روی اون محرمات نیست مگردی که مثلا روزون همونگاری شد که روزون این کارا شد و اگر مراد مصدر محرم هاست باشه با محرم هاست می شد این حده خیلی بی شد این حدیثی مرموم شهر رو بوده ولو شیف نصد به ثابتی هم منظمش کرده و هم بیشتر اومده، بوده و که خب باز داره محرم ها بی شد به کیف محرم هاستین از یک توضیح بود راجع به اول عبارت شیف که انشالله کافی باشه و اما برگردیم به, به تعبیر مرموم شیف ادله اغذره دلالت بر حرمت به اصطلاح چیز می کنه تطریف می کنه یعنی حرمت وضعی داره در متعیی می میشه به این که شما مالک پول نمی این سؤال این حرمت ویلون للمتصرفی چطور اصفات میکنه شما مالک پول نیستین این سؤال از کنم حضور با سؤالتون آیات مبارکه ای که در اینجا ذکر شده یکی همین صوده ایست که به نام متفقین نامیده شده که بسم الله الرحمن الرحیم ویلون للمتففی دیدوز برد در این مکان سواحد کردن بردید که هم جنبه قرآنی داره و هم به جنبه بخش های علوم قرآن مفیده هم و هم راجع به بخش احکام قرآن بر استفاده احکام از قرآن این بسید انشاءالله مفید واقع بشه ریگن المتفصبین یه بحثی هم که آیا به کار بردن کلمه رید مرادف با حرمت یانه به خاطر اینکه رید به واضی در یهنم حالا گفته شده که در تفاصیل دیگر شده که چون مربوط به رحمت ما نیست وارد میشیم به عباراتی که من دیروز صحیح کردم در اینجا ذکر این که رید برای متفصینه رید المتفصینه این نشون میده که عمل تدفیر در باطنش همون درجه عظیمه جهنمه اون درجه خطرنات جهنمه اون آتشه یا به همون اصطلاح گروزی حضور من دیدو سوزی شهرز کردم یه روز بکرار نمی کنم ما از حکم جزائی حکم موگلی می چون ری وید با آتشه توید با آتشه. و اگر آتش داره یک کاری صابه شد ندیده تن معناش اینه که اون کار کار حرامیه مثلا گفتم تنج ماه زندان برای کسی که این کار رو بودم همین که قطع جزایی آمد این معناش اینه که اون کار حرامیه این بودی دوزیه توضیحی دادیم اینشالا اگر دیگه هم شد توضیح ها دیگه ولد عرض میکنه الگه این وعد شد که این سوره مبارکه به این حتی اقوالی که به صحابه منصوره مثلا به ابن مسعود نسبت داده شده که مکی این کلمه که من میگم نصفت چون انصافند خیلی از مطالبی که به افراد نسبت داده شده وقتی برمیگرمیم یعنی به تحریل تحریل تا... یعنی به ردیابی تاریخی ببینیم اول چی گفته از کجا گفته یاش مبهم هستن روشن نیزی و حدیث مرسلیه یا دردها بخش شده من همیشه از کلم اون هدف ما در برسه یا پهرستی که در این تاریخی یا رنگی یا به این از که شما داده این معالیتون مثل این جوهای آب مثل این چشمه های آب جوه های آبی کلوانه این جوه ها رو خیلیه کنید مثل این که شما که یک ترمان این دفت و آب در مقابلتونه میدیم مثلا نیم کلومت یکی خ بینی مثلا اشیای و کارش چی شده این گذشته رو با هم می‌رسید باز چه جوری می‌رسید بعضی‌ها هم گاهی اینطوری میشه مسائل تایکی هم همین قضیه مثلا شما الان به شما سه تا گفته مجرور تاریخی یک مثل ابن مسعود که از زمان صحابه است میگه در مکه است از ابن عباس است که بی در مدینه و مثل جابر بن زید و شریش از این قرا داشتن که هم بیت مكتور مینه وقتی که ما خطو نرد در هاو بسن بعد بس ما در حقیقت اینه اون ریاضی ما در حقیقت اینه شما این نردها رو پیگیریتون بعد یه لحظه یک جور کامل شده قبل از هر شمار میزنه دیگه یکیش به قرنه دوم تمام میشه یکی یه قرنه دوم تا قرن اول گفته شده که در ما و مووم و جعال و یا بعض از خامونا و وردنه و رجله یا محسنه یا مجبور اتصال پیدا نمی لذا من چون خیلی در این اقوال شبه دارم برای این که خیالتون راحت باشه بگیم چیه بنابرای نسبت نسبتی بین صحابه و غیر صحابه در این یعن اختلاف از خیلی انصاب قضیه غیر از این که میگن آیات مکی کوتاه هست آیات مدینه مفصلتر درسته آیات مکیه انصافاً به لحاظ سکت‌کردی سنگین‌ترن میشه. میگه که ما در فارسی میگیم سکت خراسانی در مقابل سکت عراقی که مثلا یه نوع ترازور بیشتر انصافاً انصافا آیات مکیه غیر از اون ما مثلا میگن هرچی را از اعقاید اونها مستقیماً بیشتر در مکیه. انصافاً آیات مکیه سنگین‌ترن به لحاظ اون کلیه اعطا و اضافه بر اون غیر از بحث‌های تاریخی و ترکیبی که دارن دلحاظ محفظات هم این رو ما به گذوه میبینیم مثلا بعد از محفظات هستن که اصلا در آیات مدنیه به کار روزه نشده محفظات لفظی هست که یه مثلا همین متفقی مثلا فا که الان تو ذهن دن ری الان ری در اونیه مراجعه نکنم تو ذهن میاد، مثلا در هنی سوری مبارکه در یک آیه دیگه اولای از آن نو اولاری که اندام مب اوشون، لیومن ادیم بعد میفهمیم کللا این کتاب از فجارة لپی سجین خود کللا رو که من نگاه کردم، خود موارد است. در قرآن در آدی مکیه، در آدی مگرینی کسی. سجین در آدی مکیه. فجارة به این معنا من این خجرا، نه من بقپال. فجارة نه بوده. در آیات مکیه بله این یک نقصید که غیر از حالا اون جهات به ساقیعت شغیر و آهنگ شغیر یاد سغر و کبرش اصلا در در محفظات خصوصا در مکیه در مدیه نازل نشده این حالا یک احتمال داره که راجع باشه به خود ترقیه رنگ باشه که طبعا همینطور هست که راجع به اما احتمال زادریش بیشتر اینه که احتمالاً اون لغت عربی که در مکه بوده یه نقضایی در اون آهنگ کلامی شده در کیفیت عذاش با لغت مدینه فهم میکرده. چون عربیت یک شناهایی داره و مواطن وجودش مخصوصا مقدمش از،, از یمن از کنوب جزیه هست که از اونجا مکشب شده حالا سمی بشن و یه مقدارش هم توسط اقوان و عرب مثلا بوده که از که قده در قبیله سمود که قبل از اسلام تمود تمود تمود تمود تمود سال از اسلام کلن تمود در از این 800 سال 300 سال قبل از اسلام قبل از مسیحی 500 سال بعد از هشتر وجود داشته و سمود لازمین جا و سخت بلوان این کتابی از نوم متصل پی تاریخ العرب قبل الاسلام این نگاه میکردن راجعه به خیلی توضیحات دردازه چند سال اخیر در همین شبه جزیره در عربستان و سعودی در این سمود در عربستان تقریبا بین فرسی مثلا مرکز عربستان تا دریای احمد دریای این مقدار سمون آف داشتن و سیاه هم داشتن خوبی هم داشتن همچون که ورآن توضیح میده و سمون در دردین جاو سخت و درگاه مرادت اینه یعنی موضوعی مدین شما تا درگاه سور شما مکه نزدیک که است مدینه سوره مکه حدوز هفتات کلومت با درگاه جدوی که صاحبه مکه هفتات با درگیه. جده یا جده میاند فاصله داره طبعا در این کتاب رو میکم در صاحب کابش شدیدی کردن در, در مکتب شیدن مجموعا دوازده گل. در این شبه عربستان پیدا کردند. در این بخش وادی رو و از که مربوط به سموده از این مقدار 24000 تن صد برابر می‌خواد 8000 بشه سرعت که فهمیدم اینکه این که مقدار در این 4000 تا رو منعکس کرده اونی که برای ما تعجب داشت خیلی تشابه قریب با عربی داره این من فکر نمیکنم که اینا تشابه هم با یمن مشه چون عربستان معنی شد که این صمو که سال قبل از اسلام این خیلی عرضی یعنی خیلی عربی سندی بود اینها داشتن که طبعا به مکه نزید و تأثیر اونها برمدینه بیشتر بوده قبضا در حال یک نکات تأدیری هست که بیتونه تمیز آیات بوده یک نکات قانونی هم به لحاظ آیات احکام هست این هم این محسیکه حالا که این از اون نکاتی که به لحاظه آهنگ و صدا و مفردات و ترکیبونه هست یه اختلافی هم درازه احکام هست از خلی آیات مدنی تعابیرش قانونی تره یعنی چه قانون کرده؟ یعنی جذا و عقوبت ها مشخصه کیفر ها مشخصه از ساره و از ساره شهر فقط هایی در آیات مکی جزا به همون چاکده خودیه به شریعته اینه همون قیامت رو که این در قیامت رو یه جزایی خاص روی این بنده من ده اطلاق وقتی که نیدن با در حضور علم اگه جایی بیدیم من رو خبردار کنیم اون یکی که کسیم جزا و کهی و از روییم جنبه انزام با الاملهرککن ان انت یر و شید این انضاز آیا و على نسه صوفون و اق کالو او و بکنید؟ بعد از این که آتش رو به مرکفی نسبت داده. و بعد از اینکه موضوع رو مشخص نکردم که متفاوت کسانی سعی که در کل و بعد کوتاهی میکنم، در اوقات علاوه بر آن نهام مربوط شوم لیوم لیومن عظیم، دقت کنی؟ به جایی که با آنها که مثلاً اکثیر تأثیرت تأثیر بوده میشه انگوشه بوده میشه شلاب داده میشه جاری میشه، علاوه بر آن نواده که نهام مربوط شوم لیومن عظیم، یقوم ناسو و رفت یعنی و اول آیه رو و جهنم و جهنم و اون شدت از جهنم اینجا بود در در هم در تکلمه باز همینجور کلا حالا این لب دیگه ای اون بحث من این کتاب از خجاب لبی سجین یعنی به عبارت دیگر در این تحبیر البته این که تعبیر به کتاب در نامه هم و اعمال زامن صدیه تو آیات مدنی هم هست اما تعبیر به کتاب به معنای قانونی خاصه به آیات مدنیه کتب بعدی کومسیان که ما کتب بعدی دردین همه قبلی کن اون یعنی مراجع خاصی نکردم اما چتاب باید چون چتاب داری ونهای بامنیست یعنی ببنید وجود به اصطلاح برنام ارز کردن این یک ترهنگی بود در میان عرب که اگر ما ها سنه این مثلا ایزام میشه می مثلا در کهبور و آویزام می کردن یا بین قرار داده شد. نوشتی می شد وقتی نوشته می شد آور ایزایی ایزامور بود یک جایی بخص و جایی تراجع بود ندود لزوم زیاد نوشتن مرادست بود یعنی نوشته شد اخیلی نوشته شد یعنی دیگه جای برگرش درش نیست یه نوشته هم دلاغه نامه اعمال به نکاس اعمال انسانیست این نوشته اینجا اونه کلمه سجین هم البته سعی شده که تفسیر عربی از اون داده بشه که بگم از کلمه سجینه این مثل شری که از کلمه شرق. یعنی سجین یک زندان فوق العاده آده زندان اینجوری بازن یک زندان بسیار شدید یعنی یک زندانی که هیچ امکان رهایی از رو حجود نداره سجین غیر سجین سجین زندان عادی سجین زندان و که لا یوم کنو فرام هنن به وجه حجود لا یوم کنو تخل بسنه و, و در بعض از جبایات ما رو رویس آمنه تفسیر شده به آخرین درجه جهنم یعنی جهنم اگر هفته در زمین مثل از زمین اون طبقه هفته همه جهنم سجینه طبقه هفتم همه آسمان هم الیینه الین در مقابل سجین و که ازدهیشون احتمال دادن که این لبس یه نوع تحریر شده یه لبس باشه نو ابدال شده از تبدیل شده از لامه سجین که اون هم یه کلمه به استداف فارسی سنگگه تعریف شده به نام سنگیگه امیت احتمال تعریف خود سنگیم هم خیلی بیاده انصاف قضیه این که این ها به سجین جن این یک طبیعتی بوده که هر لبزی که عرب استعمال کرده به یک معنای عربی و به یک عربی برگردند این روشن نیست نه خود این مطلب روشن نیست این به سه جن برگرد احتمال قضی که این هم سنگیم بوده چون این تعریف شده به سکت این سنگی چون در لغت فارسی از سو کلال هم به خلاف لغت عربی معنی مختلف رو با تسوند و نشوند حفاظه بکنن نه با حیات در لغت عربی با حیاته این رو به یکی حیات عربی فعیل بگرزن این در حقیقت نظره این است که شاید کلمه فارسی باشه همون سنگین چون یعنی در بغض پارسی درده پسند هاییی که برای توصیف به کار میشه مثل زر زرین مثل سیم سیمین مثلا بله حالت از این احتمال داره که و سنگ سنگین یعنی مثل سنگ از در اینجا مرا در این کلمه در حقیقت حالا اگه باشه یا سنگ باشی تصوریم حقیق تصوریم ما یک سنگ بسیار سنی که قابل تکان دادن نیست مثلا سنگ سا سنگ چی در بیشنه من هستنده مختلفش سنگ هم حالا فارسی که فارسی من الان چیز هم نگواردن به فارسی مراده مرات سنگ و خاک درجات دارم دیگه خاک درن و خاک سفید خاک سنگ میشه کلوخ سنگه که وقتی که با دود سفره باشه جرا شده باشه سفاط شده میشه چینیه اضافه درجات مختلفی داره سنگ ها سنگ آتشفشانی از سنگ آهن هست سنگ درجات مختلف ظاهرا مراده از آیه به قرینه هست نمی‌خواستم از اینجا بشن چون یه نکته مراده از آیه بقرینه یعنی یک سنگی که اصلا قابل تکان دادن که سنگی سنگ نما سنگ, سنگ،, سنگ شده که چرا چون میگه این کتاب لعفت و جار رفیس این کتاب که از اختیار انسان خارج زیر سنگی قرار گرفته که این سنگ قابل تکان دادن نیست هیچ نمیتونه او چیزی درد ولی و ما ادراک راک ما سجین کتاب و مرغوم ویدون یا اومد غیر مکردی ترهیمشن به حسن اعمال است. یعنی عمل او موجب شده یک انسانی که این لطافت وجودی داره عمل او این اکار صدا کرده یه کاری که بزرگترین سنگ ها تکان تکار بزرگترین سنگ ها در قبال در جایی قرار گرسه که به هیچمد از سنگ هم سنگتره که ما که در بعض روایات وارد شد این راجعه بیمید روزی به کلمه این مطرف به ذهن من بوده این کلمه از اصول عربی نداشته باشه مثلا اون سنگیل و سنگیل نه، و چون در مکه بوده به احتمال بسیار بسیار بسیار که اصل مثلا سموندی یا اون داشته باشه در این دست به داشته باشید من دا اگر دکت بکنید در ازی از کتب احل عرم لغت به اشتباه این کلمه خیلی به حیث و به سخت داد نصد من روما بردی عبارات یک مثل راجب نزول آیه بود پس این که این آیه در مدینه نازل شده احتمال شبیه می میخوره ولی گفتن اولین سوره که در مدینه نازل شد بقرد ولی این سوره برده شد ماست چون چون این میگن که به منبت تا چون در این و پیمانه در مدینه از مرتب نیست همون اول اشکال کنه که این کار بدید این انصاف میخوره لیکن اگر هم در فرضی ما قبول بکنید هنوز تاوی تابیه رحل ندکن در از میکنیم چه بلاحاز کلی و آهنگ آیا چه بلاحاظ مفرداتی در بره هست چه بلاحاظ کوتاهی و بلندی آیا چه بلاحاظ به اصطلاح شکل تعریفی آیا و چه بلاحاظ تحبیرات قانونی آیا، تعبیرات قانونی شد به قانونی مکه میخوره نه به تحبیرات قانونی مدینه و شاید سر این که برای باهم جزائی فیده نشده همینه اصل در آیات مکی مدینی ما داریم که صارف فقط ثاره ایامو اینجا می متفث ثاره ایامو بیا جان. به ذهن من میاد که آیه جزء به شواهد موجود جزء آیات اطلاق نزول اگر در مدینه باشه، علی هیجونه که ابن عباس گفته مدنی. از کدی اگر برعکس در مدینه باشه، احتمال داره وقتی خاندان ابوسه، اصلا ابن عباس اصلا مدینه نبود با پدر در مکه بود. یا تازه دنیا آمده دو ساله بود بکه خب, خب آیان در دیگه افوانشی و قالم افواز کتا دقیقی؟ اینا ارزش علمی هم به نظر رضا منصوب. از منصوبه ارزش علمی نداره از افواز تسید دیگری خود او ارزش علمی که مثل ما این که من درزن. که شواهد نشتو در مدینه روشه اگر هم باشه به خاطر هنوز م سیاه و آیات مکیست اگر که در مدینه نزول پیدا کرده باشه وقت نقطه دیگری که در اینجا شد در این کتاب تفسیر و گرسومی لطیفی داره تفسیر دیگه این است که آیا تدفیر اختصاص به کهیم داره انصافا این میز ظاهرن از کهیم اوسع باشه در کهیم میاد در وز میاد و در ازدن میاد بذکه بدی نیست در مثلا چون ادیت اشیاء ان در بحث به خواهد اون بنام مشاهده است مثل گوسه مثلا گوستان به نگاه بکنه میدونه که این گوسه تقریبا چه کیلو وزنه میجون گوسه تقریبا 45 کیلو داره اینم داره تخمین راه میکنه هیچ آیه ای نمیگه تقریبا و اهل گالی اوقات آماده از اون بالاتر مطرح کردن گفتن اصلا تخمین در هر چیز میاد آل و از پتیر شدید، ورونه، ورغوزوره، ورسلاته، ورحدی که ایست. نمازش کم بکنه، چون بعضی ها داره چیز که نمازش کم بکنه ساره، سره به این سلاته. پس ما یه و داریم که احتمال داره در مدینه چون فقط کلیمانه بوده پتیر رو در کلیمانه بیار میگردن. یک مفهوم عرفی آن پیدا می کم کردن هر چیزی برای در نماز برای در روزه برای در حدا در هر کار هر کار اخلاقی در کارهای اخلاقی یک تصییر قانونی داریم قانون خاص اون تصییر قانون خاص در باب معاملاته حالا می به کهی باشه به وعد می باشه به عرض باشه به توصیف باشه به مشاهده ظاهرا فهمی نمیکنه. هیچ دلیلی خاصی نداره که حتما به یکی یعنی از این جهات خاص باشه. انشاءالله تعالی الله وا علی محمد